بسم الله الرحیم و بهین السعین سخن ما بر سر سیرهای معرفتی بود که درباره خدای تعالی داریم یه سیر من الخلق الی الحق بود که منظور شناسایی اجمالی خداوند که از آیاتش که خلقیت دارند پی به او ببریم که حق مطلق این از راه های مختلف ما گفتیم میشه این سیر رو کرد حالا اجمال دارم میگم که قضیه به اسطلاح سر نختر بیاد. از زمده مثلا گفتیم که یکی از راه که میشه از محدودیت خلق به نامحدودیت حق پی برد و این عنوان بحث اولیمون بود مثلا گفتیم که تمام مبادی که ما در این عالم میشناسیم همه محدودن هم. چون اگر آهن نامحدود بود هر چه بود آهن بود اگر مس نامحدود بود هر چه بود در عالم مس بود یعنی که نامحدود حد نظری دیگه اندازه نداره و چون ما میبینیم هم آهن هست هم مس هست هم سرب هست هم خاک هست هم نم... چیزای دیگه هستن پس صد درصد هر کدوم از این اشیاء محدودن قضیه یک قضیه دو هر محدودی به ذات خود موجود نیست چرا؟ اگه شما میگین یه چیزی که یه متر مثلا به ذات خودش هست چرا یه متر دیگه مثل این به ذات خودش نیست چرا این یه متر فرض اینه که یه متر دیگه بود اونم ب... از جنس همین بود عین این بود چرا یک موجودی یه مترش اجتزا داره باشه یه متر عین همین اجتزا داره نباشه این تضاد ده پس بعد متر دومش هم باشه متر سومم هم طور متر چهارم هم همینه تا بی نهایت. هر چیزی به ذات خود باشه نمیتونه محدود باشه باید بی‌نهایت باشه در این قضیه اول این بود که اشیاء این آدم همه محدودند قضیه دوامی بود که هر چیزی که محدوده به ذات خود نمیتونه باشه اگر بخواد باشه باید نامحدود باشه وقتی که به ذات خود نیست پس این ذاتش از یه جای دیگه سرچشمه گرفته به خودی خود نمیتونه ایجاد بشه. و اون چیزی که سرچشمه ایناست اون نباید محدود باشه بلکه حکم اینها به اونم منتقل میشه اونم مثل اینا میشه در ردیف اینا قرار مگیرد پس تمام محدودها به ذات خود محدود نیستند اینا برگشت میکنند به ذات نامحدودی زیرنشین علمت کائنات ما به تو قائم تو تو قائم به ذات حالا میان قرآن اینو کجا گفته خلق کل شیئن تقدیر او. همه اشیاء رو آفریده و برای همشون قدر و اندازه داده یعنی اندازه دادن کار اوس خودش بیرون از اندازه است. پس همه موجودات محدودن به محدوودن به ناموجود برمیگردن. ما چند تا دلیل آورده بودیم دلایل متعدده که بعضش تو بعضی که تابام میتونید کنی، کنیم بعضیش اصلا نمیتونید پیدا کنی کنیم از کنم که شاید ذهن من اینا رو ساخته. و هر حال مخصصول این است که تو اون بحث های اولی سیر من الخلق خللق الحق این بحث ها رو دسته تا شو چار تا شو این دلائلش آوردیم های مختلف بعد رسیدیم از سیر منالخ... منالحق الالحق از خدا به خدا از خدا به خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا رو شناختیم یه ذات نامحدوده مبدع پیداشون وجودات محدود شده حالا میخواییم ببینیم که سفاتش چجوریه؟ ذاتیه این ذاتشه زائده بر ذاتشه چه سپاتی داره این از خدا به خداست نه از خلق به خدا بحث الهیات بدمعنل اخسته نه بدمعنل اعم از کنم که اینم ما میریم رو بحث مقدماتی داشت اول تجلیات خدا رو در این عالم از کارهای علمی که کرده به این او پی میبریم از کارهایی که نیرومندی لازم داره انجام شده تو این آلم به قدرت او پی میبریم از بخشک که شده تو این آلم به, به اصطلاح کرم او پی میبریم همینطور سفات او. بعد این مجلح بین امت اسلام شده که آیا سفات خدا این ذات خداست یا لازمه ذات خدا از فرق اسلامی که اینا رو من اگه تکرار نکنم دل خودم راضی نمیشه باید تکرار کنم تا برسم به بحث امشب. از فرق اسلامی سنیه های معتزدی و از شیه ها های زیدی و شیه های و شیه های اسلام همه اینا معتقدن که صفات خدا این ذات خداست از اهل سنت اشائره و صدفی ها همه معتقدن سپات خدا زائده بر ذات خداست. مثل انسان که وقتی به دنیا آمدیم علم نداشتیم. جغرافی ها نمیدونستیم. بعد برای ما تحصیل شدید. پس این ذات ما نیست. زائد بر ذاته. قدرتی که الان داریم میدوییم کچلی میگیریم نداشتیم. به تدریج در اثر تغذیر و روش حاصل شده. پس قدرت این ذات ما نیست. زائد بر ذات ماست. منطقه اونا میگن این کسبی نیست ولی زائله بر ذاتشی در اینجا یه ایرادی اینا به اونا گرفتن یه ایرادی اونا به اینا گرفتن اونها به عشقری ها گفتن که شما به مسیحیا میگید شما مشرکید برای اینکه سه اغنوم اون واحد رو مرکب از سه اغنوم میدونن ابا ابن روح القدس پدر پسر روح القدس هر کدوم اغنوم حالا شما برای خدا اقانی می... نمیدم اشاره درست کردی علم یک اصل در ذات خدا و قدرت یکی رحمت یکی همینطور چیزهای زائده بر ذات خدا قائل شدید شما که مشرکتر از اون سه خدایی ها هستید یعنی خدایی که سه اغنوم هست درش هر کدوم از این رو یه مگه میشه این رو اصل ندانست علم و قدرت و حیقت و پلانه اونا هم به اینا ایراد میکنن که آقا چطور شما میگین همه این سفات این ذات خداست معنای علم غیر از قدرت معنای قدرت غیر از کرمه معنای کرم غیر از حیاته که خدا حیه حی... اینا چرا همه به هم ریختید این دوتا همینطور زنن می جنگن با هم بالاخره فلاسفه اسلام مثل ابن سینا مثل پارابی مثل مرده صدرا اینا یه تره سومی آوردن میگویند که خدا یک حقیقت بی نهایته همطور که در اون برهان ما ثابت کردیم عدد بی یک عدد بیشتر نیست ولی صدم توشه هزارم توشه سد هزارم توشه میلیون هم توشه وسیط حقیقت کلل اشیا خدا یک حقیقت بی نهایت که همه کمالات توشه در این حال واحده بنابراین سپات این ذات خداست نه به صورت اغنوم و جدا از هم یک حقیقت کامل بی نهایت که همه مراتب وجود از علم و قدت و حیات و اینها درش هست و شما بی مثلا بی نهایت پول دارین مثلا میگم تا دوی صد تمنم دارید یک عدد یک واحد بسیط که همه مراتب کمال در او هست اینا این طرحو ریختن و طبق عددی که من آوردم این بیان با قران کریم مناسب تره مقام خدا تنها مقام واحدیت نیست در برابر کسنت مقام احدیت هم هست قل هو واحد پرق واحد و احد با تفاوت هایی با هم دیگه داره و هر حال اینا رو ما گفتیم حالا از کنم که داریم قدم به قدم میریم جلو که مسائل مطرح کنیم ما در سیر دوم هستیم سیر سوم چیه؟ سیر سوم من الحق الالخلقه یعنی مقام ایجاد و ابداع از حق به خلق آمدن یعنی این سیر قوس قوس سعودی میریم از خلق به حق بعد از اونجا قوس نزولی از حق به خلق اونجا بحث خلقت و آفرینش و این قضایه پیش میاد که ذات احدیت که واحده چجور کسرت ازش پیدا شده چجور این کسرات به چه ملاکی به چه میزانی اونجا باید بحث وحدت و کسرت میشه در سیر ثبومی در سیر دومی از کنم که ما سفات رو کردیم در سیر سومی، اولین چیزی که مطرح میشه اون این است که خلاوند سفات ذات داره و سفات فعل سفات ذات سفات است که هیچ وقت از حق تعالی جدا نمیشه یعنی نمیتونیم بگیم یه وقتی زنده بوده یه وقتی زنده نبوده چون حیات این ذاته درست یه وقتی علم داشته یه وقتی نداشته یه وقت قدرت داشته یه وقتی نداشته اینا ذاتی ولی میتونیم میگم یه وقتی خلق نکرده و خلق کرده وقتی خلق نکرده روزی نداده بود هنوز خلق نکرده که روزی بده بعد روزی بهشون داده وقتی که خالقی نبوده که گناه بکنن غفاریت خدا تعقوق پیدا نکرده کسی گناهی نکرده که خدا بخشنده باشه غفار باشه بنابراین اینا سپات فعل خداونده نه سپات ذات سپات ذات که این ذات حق سالا بود و همه ازلی بود و از خدا جدا نمیشد اینا صفاتی است که انتظاه از فعل الهی میشه. یعنی وقتی که خلق نکرد می توانست خلق بکنه قدرت خلق و ولی عملا نکرده بود وقتی که روزی نداده هنوز توانست روزی بده ولی روزی نداده بود متوجهی نه اینکه سلب اون قدرت رو ازش بکنیم درسته پس این صفات از فعل خدا انتظار میشه وقتی خدا این کارو کرد این صفتو نسبت به او میگیم انتظار میکنیم ازش خب حالا باید توجه کرد بعضی از این صفات خیلی مشکله انتزاعش مثلا اراده اراده ازلی است یا صفت فعل خداست خدا مریده از ازل اراده داشته که مخلوق باشه پس مخلوقم باید ازلی باشه چون مراد از اراده تخلف نمیکنه وقتی خدا از ازل اراده داشته که خانم آرازم باشه خانم آرازم باید یک خانم ازلی باشه خب خیلی مخلوقات اینطوری نیستن ازلی نیستن حادثن این مشیت در ذات خدا با اراده تفاوت داره. مشیت من مثال میزنم آقا من از هفته پیش نظرم من بود که امشب بیام به حضور شماها این یه نظر حادثی نبود که امشب من تصمیم بگیرم بیام اینو بهش میگیم مشیت اراده این بود که امروز تا از شیف لباس و اون مشیتو به فعل رسوندم حالا آمدم در حضور شما اراده حادثه ولی زمینه قبلی در ذات داره نه اینکه نداشته باشه انما امره اراده بر سر اراده ازای توقیتی آمده زمانی که اراده کن وقتی که اراده کنن پس این حادثه همیشه این اراده نبوده ولی مشیت بوده در ذات خدا چیزی اضافه نشده این خاص همیشه بوده وقتش که شده انما امره ازا اراده شیعا ان یقود الله کن فیکن روایات شیعه نبینیم ما منصفیم قرار نیست که هر چیزی شیعه گفت هم قدرت بگیم روایات شیعه در این باب از ائمه که در کافی در ارز کنم که کتاب و توحید صدق این آمده بسیار عالیه سر رزاد در بسیاری از روایات اینا رو گفتن که این اراده صفت فیله صفت ذات نیست اون مشیته برحال حال این است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون رو که اینجا گفتم حضرت مسیح علیه السلام که میگن کلمه منظور لفظ نیست چون او با کن ایجاد شده یعنی با تحقق اراده خدا بدون پدر و اسباب قبلی از این جهت میگن کلمه حضرت مسیح کلمت الله آدم کلمت الله مسل عیسی عند الله که مسئله آدم خلق هو من تراب ثم قال کن كن فيكون راست اینا به تعبیر علمی جهش ها متوس های طبیعت و امر الهی نه قوانین تدریری که سنفش میکردن اینها سنت الله بدن تجدد سنت الله تبديل و بدن تجدد سنت الله تحويلا اونها تبديل تبدیل تحويل نذار به حال مقصود این است که حالا ببخشید ما گاهی مسائل عقلی رو میخوایم با قرآن هم یه شاهدهایی بیاریم که قرآن تو این معارف وارد شده منطبع فهم فهم کردن آیات به هر حال سخن اینجاست که بنابراین اراده خداوند که این همه تو قرآن آمده اذا و اراده اذا و اراده پس اذا لم هم هست خوابیده تو زمانی که اراده نکردم هست درسته؟ ولی اون خواست خداوند که در ذاتش بوده که این موجود پدید بیاد جدیدا ایجاد شده تصمیم نگیرد در ذات در واجب و وجود چیزی حادث نمیشه حدوس مال در عالم امکانه آلم وجود همه چیز از کنم که سبب اونجا تو دیگه واجب که یه وقت ترک نمیشه که به هر حال محصول این است که قضیه اینطوریه خب حالا این اراده منشاء فعله درسته این نکته هم به خدمت شما بگم که اذا اراده شیئا ان یقول کنفع کن اون کن فیکونش همیشه جهش نیست زمانی که اراده بکنیم خدایی شی بشه حالا خدا بخواد که طی مراحلی بشه یا ناگهان بشه این عامه هر که خدا خواسته باشه ولی زا خواست خداگاهی به صورت جهش تو طبیعی از دور میکنه که ما تو علوم طبیعی هم اصفاد کردن مخصوصا در بیولوژی و زی شناسینا گاییم به ترجیل مرحله <تصفح> به هر حال اون اراده منشه فعله. حالا ما تازه از ذات الهی سرازیر میشیم پایین به طرف خلق میاییم که منشه این سرازیری اراده خلاص کن پیکونشه از کنم که وارد این آلم بیره. در اینجا بعد این بحث رو مشرف کنیم که چگونه ممکنه از یک ذات واحدی این همه کسرات پیدا بشه این فکر فکر تولیدیه بعد اگر بخواهد از ذات واحدی کسرات پیدا بشه بعد اون واحد تبدیل به کسیر بشه این تولیده اون واحد شخصیت رو از دست میده ولی در مقام انشاء و تخلیق آفرینش قضیه این طور نیست این مثال خیلی ساده براتون بزن برای که تهم آسان بشه شما یه معلمی هستید صد هزار زانش آموز نشستن تو فضای آزاد بلندگو هم هست شما میگین که ای بی سی دی اونا همه میگن پس از یه مدتی 100 هزار نفر ای بی سی دی تو زنشون ایجاد شد بدونین که معلومات شما به ای بی سی دی زیاد شده باشه یا کم شده باشه اضافه شده باشه یا کم شده این معنی انشا معنی ایجاد از زمیر تو نهدون میگه تعالی تعال دریاها فریده با موجودات عجیب آسمان ها آفریده با موجودات عجیب کسراتی از اون وحدت سرزده بدون این که اون ذات کم شده باشه یا زیاد شده باشه چون هر چیزی کم و زیاد شد به چه محدوده محدود ها هستند که حدشون زیاد میشه کم میشن نامحدود نه کم میشن نه زیاد به هر حال محصول این است که اون خطبه خیلی خطبه مهمیه که ابن عبل اونجا که رسیده گفته که اینا فلاصفه ایونان اگه اینا رو میشنیدن این حرف رو میشنیدن از علی حرف ها خودشون رو میذاشتن کنار و معلومشه پیغمبر چون علی هرچی بهش میگفته میگفته بعد میگفته علمانی رسول الله مجید پیامبر یه چیزایی می دونسته که عمومی نبوده برای یاران خاصش هم بوده می گفته آره چیزایی که مربوط عموم بوده برای عموم یکسان می گفته ولی در معراج اون چی دیده و معراج حقیقتش چگونه بوده چی بوده که تو قرآن که نیست که اصل او بعضی از لمن الماس در الهرام الهلمسه لنوریه من آیاتنا. اون آیات چی بود که بهشون نشون داد قرآن ساکت خب پیغمبر بعدی علی نمی گفته به دیگران از اصحاب خاص نمی گفته من چی دیدم چون کشنیم پیغمبر رو بردیم تو محراب به سحر روحانی فوق العاده قوی بعد اونجا گفتیم سیب واسه پیغمبر آوردن خورد اونجا و نصفشن برای خدیجه آورد که فاطمه متوید شد قصده نیست بازی چه نیست یا بردن اونجا شراب رو و شیر جلو پیغمبر گذاشتن پیغمبر شیر رو انتخاب کرد فرشتبش گفت اگه شراب انتخاب کرده بودی امتت همه شراب خوار مثل مسیحی ها اینا قصده نیست که ساختن اب همون ما اب همه الله مبهم بذارید چی داری که خدا مبهم گذاشتن لقد رأى من آیات ربک کبرا بزرگترین آیات خدا رو دید شهود کرد چی بوده اون آیات هیقمبر میدونست نگفته به کسی به اصل به همه بگه این از تشریع عمومی نیست که تشریع عمومی رو قل انظر شوکم على سماء به طور یک سال همه شما رو انظار میکنه این ماله تشريع عمومیه اما بالاخره قرار بود اطلاعاتی بیش از قران داشته به هر حال مقصود این است که اراده یک امر بسیط و واحده مراد متعلق اراده کثیر هستند متعلق اراده نه خود اراده یعنی اون که اراده به اونها تعلق میگیره عالم امکانه معالم وجوب عالم وجود چیزی نمیخواد ایجاد بشه درست عالم امکانه که عالم کثرته و اراده واجب الوجود متعلقش کثیره از این جهت با اینکه اراده واحده ولی وقتی میخواد تعلق بگیره به چیزهای مختلف این قدرت داره که فقط به یه چیز سر قرآن کریم برای اینکه این رو بفهمونه به ما کتاب فلسفه نیست کتاب عمومی است. ناس نه دل میگوید که ما خلق و کم ولا بأس و کم الا کنفس الواحده. خلقت همه شما ها و زنده شدن همه شماها. ها پیش من است. با خدمت یک نفر و یا زنده شدن من گاهی گویی مثال زدم گفتم ببینید کارخانه برق اینا های مادیه تطبیق دقیق نمیکنه ولی برای تقریب ذهن سیم کشی شده به جاهای مختلف صدها هزار خانه یک کلید میزنن یه دونه کلید میزنن در اونجا صد هزار چراغ روشن میشه یک لیت میزنن پایین صد هزار چراغ یک لیت بیشتر نیست اما اون اراده است اینا مرادن اینا مرادن یک چراغ است در این خامنه و چون مینه گرم هر کجا و مینه گرم انجامنی ساختن یک تراقه است در این خامله می نگرم از این یک تراغ انجام انجامنی ساختن و حال این بحث بحث من الحق الى الخلقه بحث پرود آمدنه بحث نزوله نزول تکمینی داریم یه نزول کتاب داریم نزول تشریحی که اونجا خودش هست اونجا مقام وحدت به کثرت. باید خوب تمرکز بکنیم تا به فهمیم چجوری ممکنه اراده واحد مرادهای مخت اراده واحد که متکیست ذات بی تمام استعدادهای بی نهایت در برابرش هستن که باید تمام اون قالبها رو میتونه پر بکنه نمیدونم به چه زبان اینو بگم که بتونم برسونم مقصود خدام اینام بعد فلاسفه یونانی یه حرفی انداختن تو دهن فیلسوفان ما که موافق قرآن نیست گفتن الواحد و لاویست رو انهل الواحد از واحد جز واحد صادر نمیشه نمیتونه از واحد کثیر صادر بشه بنابراین وقتی خواستن خلقت رو توضیح بدن یونانیا گفتن اول خدا عقل اول را آفرید عقل اول عقل دوم عقل دوم عقل سوم اغول عشره تا برسید به فلک الافلاق طبقه حیعت قدیم بعد فلک اول فلک دوم تا بالاخره به انسان و موجودات اخص رسید اینا خلقت این طوری سیاران. یعنی شما الان مخلوق مستقیم خدا نیستی مخلوق یه واسطه قبل از خودتون هست اون واسه قبل از نا. اون تا, تا برسه به خدا از خدا یک حقیقت بیشتر چون واحد حقیقی است از واحد حقیقی یک حقیقت بیشتر نمیتونه صادر به الله لایاستر عن الا الواحد اما قرآن چی گفت او خلقت همه شماها و خلقت یکی بر من مساوی است یعنی چه یه بیافرینم چه اراده کنم هزاران موجود ایجاد بشن به یک اراده واحد اراده من اراده متکبه بی نهایت همه استعداده رو میتونه پر بکنیم ولیزا متکلمین ما به فلاسفه مثل مولا صدرا مثل پارابی مثل, مثل مثلا بعد پارابی مثل ابن سینا ایراد کردن نسیل دین توسی میگوید که این قاعده غلطه. این قاعده برای تولیده نه برای ایجاد بله از کوزه همون برون ترابط که درست وقتی در کوزه آب فقط دیگه چیز دیگه نیست خاک و آهن و پلز و پلان نیست کنیش که بدیم یه قطع آب میاد از همون جنس این بله تولیده ولی ایجاد که اینطوری نیست که گفتم برای شما یه مدرسی یه جمله میگم یه صد هزار ذهن واردش میشه همه میگن A بی سی دی چی میگن به هر حال اینا دیگه مسائلی است که وحی کمک میکنه وحی اینجا کمک میکنه و آدم میره تو عالم هم وحیه که اینجا با زبان خیلی ساده علم هیچ موجودی شنبایی هیچ موجودی یک سال نیست وقتی فاصله کم بشه یا زیاد بشه فاصله زیادتر بشه شنبایی ضعیفتر میشه فاصله کمتر بشه شنبایی قویتر میشه صدا بلندتر بشه شنبایی بهتر میشه صدا آهسته تر بشه اما ذات احدیت چی؟ سبا ام من کم من اثر القول و من جهر به کسی پنهان صحبت بکنه مصابی ها نگفت هرزو رو میشنون. یا فریاد بزنه و من هو به باللیل و کسی که در شب پنهان بشه و ساربون به نهار و آشکار بشه در روز روشن برای من مصابیست هیچ فرق نداری، این علم احادیث واقعی اینه عرب اون زمان اینا رو میفهمید اینا وحی نیست به محمد این چیزها رو میفهمید عرب عرب دیابونی که خدا رو از خرما درست میکرد گوشتاش که می‌شد میخورد خدا رو آره این چیزها رو میفهمید یه آدم درس نخونده تو عرب ها چه سال زندگی کرد علی حرفه این چیزی ها رو یونانی ها اینا رو نفهمیدن بعضی قسمت های مطالب قرآنی رو فارابی گفته من دارم بخواد ارسطو زنده بود اینا رو برای میگفتم. هم یه امید تو عربای وحشی این حرفار زده ها تو تو محیط یونان این حرفار زدی ها آره تو اکادمی هایی که درست کردین حرفار زدین از افلاطون رو سادت شنیدی اون از سقرات شنیده و اما این معلم نداشته بود اگه معلم قبلش داشت اون معلم مشهور می معلوم می شود. این حرفا رو اون زده ها ظاهر او عنیق و باطنهو امیق عدیتون هن شد بلاغه قرآن اینطوری معرفی می ظاهرش خیلی زیبا ساده همه می باطنش عمیق. یعنی وارد بشید میره رو به فلسفه عالی متصل میشه صدق الله و علی الاقی